دوستان متشکریم که دانشجوی وفاداری بودین و از دیگران هم دعوت کردید که در این دور از مطالعات کلام خدا به ما ملحق بشن. امروز ما مطالعه اولین کتاب از انبیاء بزرگ رو شروع می‌کنیم. کتاب اشعیا نبی. دعای ما اینه که این دوره مطالعاتی به شما کمک کنه که در ایمانتون و دانش کتاب مقدسیتون رشد کنید. با هم به درس امروز معلممون گوش میکنیم به درس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش آمدید ما ضمن بررسیمون مقدمه اجمالی از کل کتاب مقدس رو به شما ارائه کردیم تا بتونید کاربردهای عملی و واقعی از کلام خدا به دست بیارید امروز ما شروع به بررسی انبیا میکنیم و هر بار یک کتاب رو بررسی خواهیم کرد اولین نبی که امروز به اون میپردازیم یکی از انبیای بزرگ به نام اشعیا هست انبیا به دو گروه طبقه بندی شدند انبیا بزرگ و انبیا کوچک البته این به این دلیل نیست که انبیا بزرگ ممتازتر هستند و انبیا کوچک در درجه دوم اهمیت قرار دارند بلکه چون انبیا بزرگ نوشته های بیشتری از انبیا کوچک دارند به اونها انبیا بزرگ گفته شده این شاید حتی به این معنی باشه که انبیا کوچک واعزین بهتری نسبت به انبیا بزرگ بودند چون اونها توانستند پیغامشون رو بهتر جنببندی کنند وقتی به انبیاه بزرگ و کوچک فکر می کنیم، بزرگترین نبی که به فکرمون میاد اشعیا هست. چون کتاب او طولانیترین کتاب در بین دیگر کتب نبوتی هست. کتاب او شامل 66 باب هست. وقتی به زندگی اشعیا نگاه می کنیم و های او رو بررسی می کنیم، ما تعریفی پویا از یک نبی رو می بینیم. در جلسه گذشته من چیزی رو به نام نمودار یک نبی براتون شرط دادم. این عنوان میتونه عنوان خوبی برای کتاب اشعیا هم باشه چون اشعیا و نبوتهای اون نمایی واضح از اساس یک نبی ارائه میکنه اشعیا اصالتا یهودی بود طبق نوشته عالمین یهودی او از طرف پدر وابسته به خاندان اوزیا و یواش پادشاه بود بدیم معنی که او در قصرهای راحت و در حضور پادشاهان زندگی کرده از اونجای که اشعیا چندین پادشاه رو خدمت کرده گذشته او را برای خدمتی که خدا او را فراخوانده بود آماده کرده در خلال دوره تاریخی که انبیا در اون زندگی و خدمت کردند از حدود 800 تا 400 قبل از میلاد چندین قدرت بزرگ در دنیا وجود داشتند بعد از غلبه بابلی ها بر آشوریان مادها و پارس ها هم بر بابلی ها و بعد یونانی ها هم بر پارس غلبه کردند این مهمه که بدونیمش آیا در خلال حکومت آشوری ها که ابرقدرت آن روز محسوب می شده خدمت می کرده. پای پایتخت آشوری ها نینوا بود. بودشعیا قبل از اینکه آشوری ها بر پادشاهی شمال حمله کنند و پایتخت اون سامره رو فت کنند زندگی میکرده. ده تایفه شمالی که اسرائیل نامیده می شدن به اسارت برده شدند که از اونها به عنوان تایفه های گم شده اسرائیل یاد میشه چون بعد از این اسارت بود که دیگر هیچ خبری از اونها در جایی شنیده نشد. اشعه در اکثر معایزه های خود حمله آشوری ها به عنوان داوری خدا برای گناه بودپلستی رو به پادشاهی شمال اختار داده بود. وقتی آشوری ها بر پادشاهی شمال حجوم آوردند، بر اونها قلبه کرده و ده تایف شمالی اسرائیل رو به اسارت بردن، آشوری ها به جنوب برگشتند و به پادشاهی جنوب حمله کردند. اونها چهل و شش شهر حساردار رو در یهودا تصرف کردند. ارتش آشور تا به نزدیکی دروازه های اورشلیم رسید و حدود 200 هزار نفر رو با خود به اسیری برد. اگر آشوری ها اورشلیم را فتح می کردند، هر دو پادشاهی شمال جنوب به فراموشی سپرده می شدند. به هر حال وقتی ارتش آشور به دروازه های اورشلیم رسید، اشعیا به یک نبی در اوج درخشش خود بود. پادشاه حکومت جنوب یا یهودا در خلال اون دور از تاریخ مرد خوبی به نام حزقیا بود. مردی روحانی و یک جنگنده واقعی در دعا بود. او ده مزامور نوشته. وقتی آشوری ها به دروازه های اورشلیم رسیدن سردار اونها فریاد زد و به مردانی که محافظ شهر بودند دشنام داد. او منو به یاد جولیات میندازه. وقتی جولیات به قوم یهود توهین کرد و داوود با او جنگید، یادتون میاد که داوود در مورد جولیات گفت کسی باید به او هشدار بده چون او حق نداره که به خدای زنده توهین کنه. وقتی این سردار آشوری فریاد زد و دشمن داد، مردم یهودا را به چالش کشید تا تسلیم بشند. او ای برای هزقیای پادشاه فرستاد و در اون نامه نوشت خدای تو که به او توکل مینمایی تو را فریب ندهد و نگوید که اورشلیم به دست پادشاه آشور تسلیم نخواهد شد اینک تو ای که پادشاهان آشور با همه ی ولایت ها چه کرده و چگونه آنها را به کل هلاک ساختند و آیات رهایی خواهی یافت آیا خدایان و امتهایی که پدران من ایشان را هلاک ساختند مثل جوزان و هاران و رصف و بنیدن که در تلسار میباشند ایشان را نجات دادند پادشاه حماث کجاست و پادشاه عرفات و پادشاه شهر صفراویم و هینا و اوا حزقییا مکتوب را از دست الچیان گرفته آن را خواند و حزقییا به خانه خداوند درآمد آن را به حضور خداوند پهن کرد و گفت ای یهوه خدای اسرائیل تو تمامی احانتهای سنهاریب را شنیده ای که چگونه خدای حی را اهانت می کند اکنون بشنو و ما را از دست او رهایی ده در حالی که هزقیه داشت در حضور خدا برای نجات قومش ناله می کرد اشعیه ای دریافت کرد و کسی را نزد هزقیه فرستاده گفت یهوه خدای اسرائیل چنین می گوید آنچرا که درباره باره سنهاریب پادشاه آشور نزد من دعا نمودی اجابت کردم کلامی که خداوند درباره گفته این است. آن با دختر صحیون تو را حقیر شمرده استعزان موده است و دختر اورشلیم سر خود را به تو جنبانیده است. کیست که او را احانت کرده کفر گفته ای و کیست که وی آواز بلند کرده چشمان خود را به الیی نفرشته ای مگر قدوس اسرائیل نیست. به واسطه رسولانت خداوند را اهانت کرده گفته ای به کسرت عرابه های خود بر بلندی کوها و به اطراف لبنان بر ام اما من نشستن تو را و خروج و دخولت و خشمی را که برمنداری می دانم چون که خشمی که برمنداری و غرور تو به گوش من برآمده است بنابراین مهار خود را به بینی تو و لگام خود را به لبهایت گذاشته تو را به راهی که آمده ای برخواهم گردانید بنابراین خداوند درباره پادشاه آشور چنین میگوید گوید که به این شهر داخل نخواهد شد و به اینجا تیر نخواهد انداخت و در مقابلش با سپر نخواهد آمد و منجنیق را در پیش آن بر نخواهد افراشت به راهی که آمده برخواهد خواهد گشت و به این شهر داخل نخواهد شد خداوند این را میگوید زیرا که این شهر را حمایت کرده به خاطر خود و به خاطر بنده خیش داوود آن را نجات خواهم داد پس فرشته خداوند در آن شب بیرون آمده هزار نفر از اردو اردوی آشور را زد و بامدادان چون برخواستند، اینک جمعی آنها لاشه های مرده بودند و سنهاری پادشاه آشور کوچ کرده، روانه گردید و برگشته در نینوا ساکن شد. و واقع شد که چون او در خانه خدای خیش نسروک عبادت میکرد پسرانش ادرم ملک و شراسر او را به شمشیر زدند و ایشان به زمین آرارات فرار کردند و پسرش آسرحدون به جایش سلطنت نمود. حالا فهمیدید چرا گفتم این دوره درخشانترین ایام برای اشعیا بود. به لحاظ انسانی شما میتونید بگید اگر خدمت اشعیا نبود، آشوری ها هر دو پادشاهی شمال و جنوب رو به اسارت می‌بردند. اشعیا یک خدمت داشت، یک خدمت فعال سوغل جیشی. او نبوت کرد که لشکر آشور باز خواهد گشت و پادشاهی جنوب نجات خواهد یافت. اشعیا یکصد سال قبل از اینکه ها آشور را شکست دهند و تبدیل به ابرقدرت بشند. و بر یهودا غلبه کنند و یهودا را به اسارت ببرند زندگی میکرد. اشعیا یکی از بزرگترین های نبوتی و خدمت پیشگویی در کتاب مقدس رو به ما داده. او این واقعیت رو که بابلی ها بر آشور و پادشاهی جنوب غلبه خواهند کرد و مردم را به اسارت خواهند برد 150 سال قبل از وقوع پیشگویی کرده بود. او همینطور بازگشت از اسارت بابل را هم پیشگویی کرده بود. خدمت نبوتی یکی از بزرگترین های نبوتی و پیشگویی یک نبی در کل کتاب مقدس هست. اگرچه اشعیا 150 سال قبل از غلبه پارس بر بابل زندگی میکرد اما او این واقعه رو هم پیشگویی کرده بود اشعیا حتی نام امپراتور فاتح پارس کوروش کبیر رو هم پیشگویی کرده بود اشعیا برای او نبوت کرد که تو فرمانی صادر خواهی کرد که این امکان رو برای قوم یهود فراهم خواهد کرد که به بابل برگردند و شهر و معبد و کشورشان را بازسازی کنند این یکی از خارق‌العاده‌ترین مثال‌های خدمت پیشگویی نبوتی در کتاب مقدس هست. اوراق یهودی یوسفوس فلاویوس جزئیات جالبی درباره بازگشت از اسارت بابل به ما می‌دهد. وقتی پارسیان بر بابلیها غلبه کردند، اولین کاری که کوروش کبیر کردیم بود که فرمانی به این مضمون صادر کرد که اسرای یهودی می‌توانند به کشور خود برگردند. این فرمان کوروش کبیر در کتاب عزرا داده شده کوروش کبیر فرمانی صادر کرد که بر اساس اون یهودیان می توانستند به اورشلیم برگردند و معبدشون را بازسازی کنند. یوسفوس جزئیات جالبی رو ذکر کرد و نوشته که مشایخ نبوت اشعیا رو نزد کوروش کبیر بردن و به او نشان دادند. اونها توضیح دادند که نبی اونها که 150 سال قبل زندگی می کرده او را به نام میشناخته و گفته بوده که کوروش کبیر قوم او را آزاد خواهد کرد. بنا ناب گفته یوسفوس این مکاشفه بود که کوروش کبیر روادار رو کرد که اون فرمان معروف رو صادر کنه. دلیل دیگری که ما به نبوت بزرگ اشعیا باور می‌کنیم فرمان کوروش کبیر هست که در باب‌های نخست کتاب از را در موردش می‌خونید که آیه به آیه و کلمه به کلمه مطابق نبوت اشعیا هست. بنابراین وقتی که تاثیر خدمت اشعیا رو جمع‌بندی می‌کنید، میتونید ببینید که اشعیا مسئولیتی بزرگ در نجات یهودا از دست آشوری‌ها داشته. و با خدمت بزرگ خودش ارتش آشور رو از دروازه های اورشلیم بازگردونده. اگرچه 150 سال قبل زندگی میکرده، نوشته های او باعث نجات قوم یهودا از بابل شده. نوشته هایی که برای اونها این امکان رو فراهم کرده تا برگردند و معبد و شهر و کشورشون رو بازسازی کنند. وقتی به تأثیر خدمت و زندگی این مرد توجه کنید، میتونید بفهمید چرا از اشعیا با عنوان شاهزاده انبیا یاد شده. اشعیا باید واعظ خارق بوده باشه بنا به گفته عیسی یحیای تعمید دهنده بزرگترین نبی بوده که تا اون موقع به دنیا اومده اگرچه در باب سوم لوقا همین نبی که از او به عنوان بزرگترین نبی یاد شده وقتی که شروع به موعظه کرد از موعظه های اشعیا استفاده نمود از اونجایی که بزرگترین نبی دنیا از موعظه های اشعیا استفاده کرده پس باید خود اشعیا هم واعظ بزرگی بوده باشه اشعیا حدودن بین پنجاه تا شهست سال موزه می کرده او در ایام پنج پادشاه در یهودا و شش پادشاه در اسرائیل زندگی میکرد. خدمت اصلی او در یهودا بود اگرچه او مطالب بسیاری در مورد چیزهایی که قرار بود توسط آشوری ها بر سر اسرائیل بیاد رو بیان کرده بود اما خدمت و دقدقه اصلی او برای یهودا بود اگه بخوایید که دیدگاهی تاریخی از اشعیا به دقت بیارید به نخستین نبوت او رو بخونید. اشعیا به شما میگه که در خلال حکومت شاهان خاصی زندگی و خدمت میکرده. بعضی از اون پادشاهان خوب بودن و بر معزه او تاثیر گذاشتن و بعضی از اون پادشاهان هم شریر بودن و شرارت اونها بر معزه اشعیا تاثیر گذاشته. اوزیا پادشاه خوبی بود. همینطور هزقیا. در مقابل احاز پادشاه بسیار شریر و منسی هم پادشاه فوقالعاده شریری بود. در زمان منسی اشعیا بر علیه شرارتهای او فریاد برمیاره. طبق روایات منسی اشعیا رو محکوم به مرگ کرده بود و نهایتا او اشعیا رو داخل کندهی تو خالی قرار داده و با اره او را از وسط نصف کرده. بسیاری بری نقیدن که ابرانیان 1137 در جایی که میگه برخی از قهرمانان ایمان در عهد قدیم با اره دو پاره شدن اشاره به اشعیا داره. چیزی که یقیناً میدونیم اینه که منتقدین سالها سعی داشتند که نبوتهای اشعیا رو به چندین قسمت تقسیم کنند. تا حدود 1700 سال هیچ کس این واقعیت رو زیر سوال نبرد که نویسنده ی کتاب اشعیا فقط یک نفر بوده. بیشترین انتقادها از کتاب مقدس از حدود 200 سال پیش شروع شد. سرچشمه اوج انتقادها در قالب حملهی علیه کتاب مقدس از آلمان بود. برخی از این انتقادات هم متوجه کتاب اشعیا بود. انگیزه این حملات این بود که اونها نمیتونستند بپذیرند چطور شخصی میتونه 150 سال قبل از آمدن پادشاهی او را به نام پیشگویی کنه. این معجزه ای بود و برای آنکه بتونن قدرت های خارق رو انکار کنن تلاش میکردند که ثابت کنن چندین نفر کتاب اشعیا رو نوشتن. اونها بر این باور بودند که کتاب اشعیا حداقل دو نویسنده داشته. یک نویسنده 39 باب اول رو نوشته و نویسنده دیگر 27 باب بعدی رو برخی بری نقیده بودند که کتابش اییا سه یا چه نویسنده داره. من بر یک پارچه بودن و واحد بودن کتابش اییا اعتقاد دارم و معتقدم که کتابش اییا فقط یک نویسنده داشته. من دلایلم رو بعدها در بررسی کتابش اییا ارائه خواهم کرد راهت درستی برای تقسیم بندی کتابش اییا وجود داره. 66 باب کتابش ایاب بخش هایی تقسیم میشم. 39 و نه باب اول آشکارا یک بخش از کتاب اشعیا هست و بیست و هفت باب بعدی بخش دوم از این کتاب را تشکیل میدن. دلایل متعددی برای جدا کردن این دو بخش وجود دارند. این الزامن به این معنی نیست که دو اشعیا وجود داره. 39 و نه باب اول کتاب اشعیا پیغام اشعیا است که به قوم خدا اختار میکنه و اونها را از حجوم آشوری ها و به اصارت رفتن قوم می کنه. میکنه. اشعیا این رو به عنوان داوری و تعدیب خدا عنوان میکنه. بیست و هفت باب بعدی این کتاب پیام شفا و تسلیه هست. تقریبا میشه گفت که 39 و باب اول کتاب اشعیا مانند یک جراحی روحانی و بیست و هفت باب بعدی به منزل بهبودی و شفایی هست که بعد از جراحی حاصل میشه. در 39 و نه باب اول اشعیا واقعا قوم خدا رو نیشتر میزنه. پیغام او بسیار شبیه پیام های دیگرم بیا در عهد قدیم هست. از باب چهل به بعد اشعیا تغییر جهت میده. و پیام دیگری را عرضه میکند. بخش دوم کتاب اشعیا با این شروع میشه. تسلی دهید، قوم مرا تسلی دهید، سخنان دلاویز به اورشلیم بگویید. 27 باب بعدی کتاب اشعیا پیام تسلی و 66 باب کتاب اشعیا باعث شد که مردم خطوطی موازی بین کتاب اشعیا و خود کتاب مقدس رسم کنند. به کتاب اشعیا کتاب مقدس کوچک لقب داده شده. به این خطوط موازی جذاب فکر کنید 66 باب در کتاب اشعیا وجود داره و کل کتاب مقدس هم شامل 66 کتاب هست اشعیا به دو بخش با 39 باب و 27 باب تقسیم میشه و کتاب مقدس هم به عهد قدیم با 39 کتاب و عهد جدید با 27 کتاب تقسیم میشه اولین بخش از کتاب اشعیا مانند عهد قدیم شامل حشدارهای جدی و رسمی هست و پیغام تعدیب و تنبیه رو میده و اولین بخش از کتاب اشعیا وضعیت حقیقی انسان را آشکار میکنه و راه حلی رو که انسان میتونه در خدا پیدا کنه نشون میده. بعد بخش دوم اشعیا بسیار شبیه عهد جدید هست. عهد جدید با موعظه یحیا تعمید دهنده شروع میشه که از اشعیا نقل قول میکنه. ندای فریاد ای در بیابان به گوش میرسد که میگوید راه خداوند را هموار کنید. این دقیقاً همون ترتیبیه که بخش دوم کتاب اشعیا شروع میشه. این خطوط موازی بین کتاب اشعیا و خود کتاب مقدس بسیار حیرت انگیز هستند. تقسیم بندی دیگر که میتونید انجامش بدید و کتاب اشعیا رو به طور صحیح تقسیم کنید در بابهای 36 تا 39 هست. 35 باب اول کتاب اشعیا پیغام تنبیه و داوری خدا رو اعلام میکنه باب 36 تا 39 داوری خدا رو که عملا با آمدن آشوری ها و انجام گرفتن نبوت های باب اول بر قوم خدا قرار گرفته نشون میده، بعد بخش تسلی هست از باب های چهل تا شست در حالی که این بخش عهد جدیدش را مطالعه می کنید، می تقسیمات بیشتری انجام بدید. باب های چهل تا چهل و مربوط به معجزات نبوتی درباره باره کبیر هست، باب چهل و تا پنجاب و هفت بر اولین ظهور و صلیب مسیح تمرکز داره. باب 58 تا 66 بر ظهور سانویه ایسای مسیح متمرکز شده، اینها روش هستند که شما میتونید کتاب اشعیا رو به درستی تقسیم بندی کنید. میخوام بهتون نشون بدم که وقتی بزرگترین کتاب از کتاب مقدس یعنی اشعیا رو میخونید، باید دنبال چی باشید؟ وقتی چون این کتاب وسیعی رو میخونید، دانستن این که کجا به دنبال نکات کاربردی کتاب باشید به شما کمک خواهد کرد؟ در بررسی اجمالی ما دقت زیادی صرف نمی کنیم که تمام کتاب را امیقان بررسی کنیم. بنابراین میخوام که بیشترین تمرکزمون رو در این بررسی بر بابهای پنج، شش، یازده، چهل، پنجاه و سه، پنجا و پنج و, شست و یک کتاب اشعیا قرار بدیم. اینها حقیقتاً عظیمترین بابهای کتاب اشعیا هستند. برخی مشکلات مربوط به ترتیب تاریخ وقوع در این کتاب وجود دارند. چون مأزهاهایش ایا که اینجا نقل شده به ترتیب تاریخ وقوع زمانی یا ترتیب تاریخ معزه قید نشده. اونها اینجا به ترتیبی قرار گرفتند که او برای این معزه ها دعوت شده. همین مشکل در کتاب ارمیا هم وجود داره. برخی از آخرین معزه های او در اوایل کتاب اومده و برخی از معزه های اول او در قسمت های پایانی کتاب آمده. چون اونها به ترتیب تاریخ زمانی مرتب نشدن. حالا میخوام که دو متن از کتاب اشعیا رو با هم ملاحظه کنیم که به ما کمک میکنه با خود اشعیا آشنا بشیم و همینطور با خدمت و پیغام او اولین متن در باب شش هست که شرحی از دعوت اشعیا هست باب شش اشعیا حتی میتونه شرحی از تحول اشعیا هم باشه تمامی مردان خدا در کتاب مقدس تجربهای روحانی منحصر به خودشون رو داشتند ما قبلا همین رو دیدیم تجربیات روحانی هر یک از اونها تفاوت زیادی با اون یکی داره اگر چه وقتی نتیجه تجربیات اونها را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که نکات مشترک زیادی هم دارند همگی این مردان ابتدا به حضور خدا می اومدن تا اینکه بتونند برای خدا کاری انجام بدن. بزرگترین خادمین خدا قبل از هر چیزی بزرگترین های خدا بودند شما می‌بینید که همه اونها این تجربه را داشتند و در نتیجه این آمدن پرمعنی به حضور خدا می برای خدا گامهای موثری بردارند در باب ششش شش ما شرحی از تجربیات روحانیش آیا را رو داریم در سالی که عزای پادشاه درگذشت خداوند را دیدم که بر تختی بلند و باشکوه نشسته بود و خانه خدا از جلال او پر شده بود اطراف تخت را فرشتگان احاطه کرده بودند هر فرشته شش بال داشت که با دو بال صورت خود را میپوشاند و با دو بال پاهای خود را و با دو بال دیگر پرواز می‌کرد آنها به نوبت سرود می‌خواندند و می‌گفتند قدوس، قدوس، قدوس، قدوس است خداوند قادر متعال، تمام زمین از جلال او پر است. صدای سرود آنها چنان با قدرت بود که پایه های خانه خدا را می لرزان. سپس تمام خانه از دود پر شد انگاه گفتم وای بر من که هلاک شدم زیرا من مردی ناپاک لب هستم و در میان قومی ناپاک لب زندگی می کنم و خداوند پادشاه قادر متعال را دیدم. سپس یکی از فرشتگان به طرف قربانگاه پرواز کرد و با انباری که در دست داشت زغالی افروخته برداشت و آن را روی دهانم گذاشت و گفت حال دیگر گناهکار نیستی این زغال افروخته لبهایت را لمس کرده و تمام گناهانت بخشیده شده است آنگاه شنیدم که خداوند می‌فرمود چه کسی را بفرستم تا پیغام ما را به این قوم برساند گفتم خداوندا من حاضرم بروم مرا بفرست فرمود برو و به قوم من این پیغام را بده، هرچه بیشتر بشنوید، کمتر خواهید فهمید و هرقدر بیشتر ببینید، کمتر درک خواهید کرد. سپس افزود، دل این قوم را سخت ساز، گوشهایشان را سنگین کن و چشمانشان را ببند، مبادا ببینند و بشنوند و بفهمند و به سوی من بازگشت کرده شفا یابند. گفتم خداوندا تا به که این وعز ادامه خواهد داشت؟ پاسخ داد: تا وقتی که شهرهایشان خراب شود و کسی در آنها باقی نماند و تمام سرزمینشان ویران گردد و من همه آنها را به سرزمینهای دوردست بفرستم و سرزمین آنها متروک شود. در آن زمان هرچند یک دهم ده از قوم من در سرزمین خود باقی میمانند اما آنان نیز از بین خواهند رفت. با این حال قوم اسرائیل مانند بلوت و چنار خواهند بود که چون قد شود کندهش در زمین باقی میماند و دوباره رشد میکند حالا این داستانی از تجربه روحانی اشعیا هست داستان تحول او اون کلماتی که میگه حال دیگر گناهکار نیستی و تمام گناهانت بخشیده شده است کلماتی هستند که وقتی کسی تبدیل میشه او میشنوه اشعیا تجربه روحانی داشته که فراتر از تحول میره و میتونه به عنوان یک دعوت تلقی بشه این آمدن اشعیا به حضور خداست تمامی اون مردانی که به حضور خدا آمدند از خدا مأموریتی دریافت کردن و بعد از اون خدا گفته حال برو. همیشه وقتی آمدن پرمعنی به حضور خدا وجود داره، رفتنی هم به دنبال داره. شما میتونید این رو در تمامی مطالعات و بررسی تجربیات روحانی مردان خدا در کتاب مقدس ببینید. اونها تجربیاتی داشتند که میتونه به عنوان تجربه آمدن تعریف بشه. وقتی اونها تجربه این آمدن خالصانه رو داشتن بعد از اون همه رفتن رو تجربه کردند این الگویی برای تجربه روحانی تمام مردان خداست وقتی اشعیا آمدن به حضور خدا رو تجربه میکنه شما این کلمات رو میشنوید چه کسی را بفرستم بعد میشنوید که اشعیا وفاداریش رو اظهار میکنه و میگه خداوندا من حاضرم بروم مرا بفرست این الگو در کتاب مقدس بسیار رایج هست. یک مرد خدا که برای کار خدا نمیره، کسیه که به حضور خدا هم نمیاد. تمامی مردان خدا که واقعا به حضور خدا میان، همیشه برای کار خدا قدم دارند. وقتی که انبیاه کوچک رو بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد یکی از انبیای امین در کتاب مقدس یونس هست. به یونس گفته شده که به نینوا بره که پایتخت آشور بود. آشوری ها دشمن یهودا بودن. بنابراین او از نینوایی ها نفرت داشت یونس نمیخواست که به نینوا بره اما او با خودش و خدا رو راست بود یونس به خدا گفت نه من نخواهم رفت و همینطور نخواهم آمد او سعی کرد از حضور خدا فرار کنه چون به این ترتیب استدلال میکرد اگر به حضور خدا بیام خدا به من خواهد گفت که به نینوا برم و چون من نمیخوام به نینوا برم بنابراین به حضور خدا هم نمیام و برای کار خدا هم نخواهم رفت وقتی که عهد قدیم رو میخونید میتونید این الگو رو در تجربیات تمامی مردان خدا ببینید. ببینید آیا میتونید تجربیات آمدن و رفتن اونها رو تعریف کنید؟ مسئله نهایی اینه. چه کسی خواهد آمد و چه کسی خواهد رفت؟ چیزی که مهمه نتیجه تجربیات اونهاست، نه جزئیات تجربیات. جزئیات تجربیات اونها بسیار متفاوت هست. یعقوب با یک فرشته کشتی میگیره. موسی با خدا توسط مشتعل صحبت میکنه. ایوب توسط گردباد با خدا صحبت میکنه. میبینید که جزئیات متفاوت هستند. در حالی که اشعیا در معبد مشغول پرستش بود، قوی زمین لرزه‌ای اتفاق افتاد و معبد به لرزه افتاد. اشعیا چنین تجربه بزرگی داشت. این زمانی بود که اشعیا خدا رو دید. او گفت: "چشمان من پادشاه را دیده است." جزئیات این تجربیات مختلف، اما نتیجه همه اونها مشابه است. وقتی این مردان واقعا رویا و مکاشفه‌ای از خدا دارند، اونها میگن من خدا رو دیدم و نمیتونند هیچ کلامی برای بیان قدوسیت و جلال خدا پیدا کنند. وقتی خدا به اونها میگه به قلبشان نگاه کنند، اونها حتی نمیتونند کلامی برای بیان گناهکاری خودشون پیدا کنند. خدا به همه اونها میگه به درون نگاه کن و بعد از اون میگه حالا به بالا نگاه کن و بعد میگه به اطراف نگاه کن و برو. این الگوی همه مردانی که تجربه دیدار با خدا رو داشتند در نتیجه تجربه ملاقات اونها به درون نگاه کردند و بعد به بالا نگاه کردند و بعد به اطراف نگریستند مهم نیست که جزئیات چقدر متفاوت بوده اونها دیدگاهی از خودشون به دست آوردند و دیدگاهی از خدا و بعد دیدگاهی از طرف خدا برای دنیا پیدا کردند وقتی اونها به درون نگاه می کنند همه موافق هستند قبل از اینکه ایوب به درون نگاه کنه میگه من میدونم که عادل هستم و هر حال وقتی خدا به ایوب میگه که به درون نگاه کن و وقتی خدا ایوب رو به خودش نشون میده ایوب میگه قبلا درباره تو با گوشهای خود شنیده بودم اما حالا چشمانم تو را میبیند بنابراین از خودم کراهت دارم و در خاک و خاکستر توبه میکنم جالبه که میبینیم اشعیا هم درست همون کار رو میکنه او گفت من مردی گناهکار و ناپاکلب هستم و در میان قومی ناپاکلب ساکن هستم وای بر من وای بر من که حلاق شدم حلاکت من قطعی است زیرا که من یک گناهکار هستم چرا همه اونها با هم در این مسئله توافق دارند که وقتی به درون نگاه می کنند می بینند که گناهکار هستند؟ چرا اونها در این مسئله توافق دارند که خدا آنقدر قدوس و باشکوه هست که اونها نمیتونند هیچ کلامی برای اظهار تجربهشان با خدا پیدا کنند به تجربه اشیا از این دید بنگرید اول در نتیجه تجربهش آیا با خدا میبینید که او اعتراف میکنه او میگه من مردی گناهکار و ناپاک لب هستم و بعد پاک شدن او رو می‌بینید که در نتیجه اعتراف او هست به او میگن که دیگر گناهکار نیستی و بعد دعوت او را ملاحظه کنید خداوند میگه کی را بفرستم خدا میگه چه کسی رو به عنوان پیام آور برای قوم خودم بفرستم و بعد وفاداری او رو می‌بینید که میگه خداوندا مرا بفرست من آماده‌ام مرا بفرست و بعد از اون او رو ملاحظه کنید خدا میگه برو اما به قوم من بگو اشعیا یکی از بزرگترین واعظین بود که تا اون روز موعظه کرده بود بر خدا به او توضیح داد که اشعیا تو هیچ شنونده ای نخواهی داشت مردم به تو گوش نخواهند داد و در واقع این روشی است که در ایام تو متداول هست منظور از رفتن تو این نیست که اون مردم متحول بشن اونها در دوره تو تغییر نخواهند کرد چون که اونها اراده ای آزاد دارند و تصمیم گرفتند که از من برگردند اما من میخوام تو به هر حال بری چون میخوام اونها پیغام منو بشنون اونها به تو گوش نخواهند کرد در چنین شرایطی واعظ بودن سخته تصور کنید که یک واعظ باشید اما هیچکس کس اصلا به شما گوش نکنه فرض کنید که یک واعظ بزرگ هستید که هیچکس نزد شما نمیاد که به کلمه‌ای از حرفاتون گوش بکنه آیا این براتون سخت نیست و این همون چیزی بود که اشعیا برای انجامش ماموریت یافت من خادمینی مثل اشعیا رو زیاد دیدم یک بار خادمینی رو در شمالی ترین نقاط پاکستان دیدم کمتر از 200 مایل از مرز چین و روسیه و افغانستان فاصله داشتند اونها پزشک بودند و 25 سال بود که در اون ناحیه خدمت می میکردند و هرگز ندیده بودند که در نتیجه خدمت اونها و ارائه خدمات پزشکی مجانی به مسلمانها حتی یک مسلمان به مسیحیمان بیاره اونها هر روزه درهای بیمارستانشون رو باز میکردن و صدها نفر رو با مشکلات پزشکیشون میپذیفتند این مسلمانان فقط به عنوان آخرین راه چاره نزد این دکترهای مسیحی خارجی میرفند در نتیجه مراجعین اون بیمارستان معمولا بیماری های عجیب و غریبی داشتند وقتی که پزشکان مشغول مداوای این مراجعین می شدن، به اونها میگفتند این مراقبت های بهاشتشی به خاطر محبت خدا و مسیح به صورت رایگان به شما ارائه میشه این پزشکان علاقمند مسیح را به بیماران مسلمانشون معرفی میکردن. وقتی من اونها رو در اون بیمارستان در پاکستان ملاقات کردم، اونها حدوداً 25 سال بود که در اونجا مسلمونها رو خدمت میکردند و هیچ شهادتی نداشتند که توسط این خدمت رایگان پزشکی کسی به مسیح ایمان آورده باشه. موقع صرف چایی یکی از اونها از من پرسید: "شبان فکر میکنی کی میشه گرد و خاک پاها رو تکوند؟" و به جای دیگه ای رفت. فکر میکنی کی حق داریم این کار رو انجام بدیم یادمه به اون خادم گفتم من اصلا خودم رو شایسته نمیدونم به این سوال شما پاسخ بدم. تنها کسی که میتونه به این سوال پاسخ بده همون کسیه که شما رو به اینجا فرستاده وقتی خدا ما رو به جایی میفرسته وقتی معمور میشیم کاری انجام بدیم تعیید اون معموریت چیزی نیست که ما بهش ثمره میگیم. اون چیزی نیست که ما در دنیا بهش موفقیت و یا در کلیسا ثمره و میوه میگیم. تقریبا هیچ کدوم این انبیاء بزرگ شنونده‌ای نداشتند. اونها رو مسخره میکردند، دست می‌انداختند، زندانی میکردند و بعضی‌هاشون هم کشته شدند. وقتی ارمیا رو بررسی کنید و تمام چیزهایی که برای او اتفاق افتاده رو بخونید، دلتون میشکنه وقتی یه میشنوه می‌شنوه که یا یافته برای کسانی موعظه کنه که هیچ عکس‌العملی نشان نخواهند داد، فقط این رو میپرسه. خدایا این تا به کی خواهد بود؟ او نمیگه خب پس در این صورت چرا داری منو میفرستی یعنی اگر اونها به من گوش نخواهند کرد رفتن من چه لزومی داره من از وفاداری و سرسپردگی او حیرت میکنم و این چیزی که اکثر ما امروزه باید بگیم واکنش اشعیا دقیقا این بوده چقدر طول خواهد کشید تا اونها آماده شنیدن بشن و خدا میگه تا وقتی که شهرها ویران گشته غیر مسکون بشن و خانه ها بدون آدمی و زمین خراب و ویران بشه تعهد اشعیا باید الگویی برای همه ما باشه وقتی ما با اشعیا نبی ملاقات می کنیم، مردی رو می بینیم که تماماً به خدا متعهد هست. شما در تمامی این انبیا متوجه خواهید شد که تعهد اونها بزرگترین موعظه اونها بوده اونها وارد اهدی با خدا شدند خدا به اونها گفته برو و اونها هم رفتند و وقتی رفتند مهمترین چیز این بوده که اونها امین بودند و هر چیزی رو که خدا به اونها گفته انجام دادند چیزی که بهش سمره میگیم مسئولیت خداست. چیزی که از اشعیا یاد میگیریم اینه که مسئولیت ما متعهد بودن در مأموریتی که به اون فراخوانده شدیم. نتیجه اطاعت ما از خدا چیزیه که در اختیار خداست. اگر شما انجیل مسیح رو با دیگران در میون میذارید یا کلام خدا رو تعلیم میدید یادتون باشه که ای که میخواید ببینید جدا از روح القدس امکان نداره. فقط خدا روح القدس میتونه نتیجه رو به بار بیاره. شما نمیتونید این کار رو بکنید. نتیجه باید از طرف خدا بیاد و مسئولیت من و شما انجام چیزی که خدا به ما میگه انجام بده. ما باید تماما به اون چیزی که خدا ما رو برای اون فرا خونده و معمور کرده متحد باشیم. نتیجه کاری که ما میکنیم با خود او هست. نتیجه در دستان او هست. کار ما تعهد هست و سمراوری مسئولیت خداست. در باب ششم نبوت اشعیا ما اولین نبی رو ملاقات کردیم وقتی ما او را ملاقات میکنیم او در حال تجربه ملاقات با خدا و احتمالا متحول شدن هست یقینا اشعیه داره مأموریت و خاندگیش رو برای نبوت تجربه میکنه او با تعهد تمام پاسخ میده این باب شروعی برای بررسی این نبی بزرگ است. اونجا ما مردی رو میبینیم که خدمتی به مدت پنجاه و شاید شهست سال رو به احده میگ ما خادمی رو میبینیم که خدا با قوت او رو به کار میگیره بعضی از نبوتهای بزرگ در کتاب مقدس توسط این مرد معزه شده و نام او را بر خود داره ما میتونیم زندگی عیسی مسیح را با خوندن نبوتهای مسیحایی در کتاب به وضوح ببینیم وقتی کتاب اشعیا رو میخونید خدا به شما برکت خواهد داد عزیزان لطفا ترتیبی بدین دفعی بعدی که کتاب های انبیارو بررسی رو کرد. وقتی کتاب کسی که خیلی ها به اون شاهزادی انبیا میگن یعنی اشعیا رو بررسی میکنیم با ما همراه باشید. آیا هرگز مانند اشعیا به حضور مسیح اومدین؟ آیا هرگز مانند اشعیا متوجه این شدین که مردی ناپاک لب هستین و در بین قومی ناپاک لب زندگی میکنین؟ دعای اینه که نزد خداوند اعتراف کنید و از او بخواد که شما رو پاک کنه و بعد مانند اشقایی بگید من آمادم مرا بفرست.